حالا چی میشه؟ هیچ وقت <تصفح> از سوارو همچنین عروسی رو نمیکردم نه تشریفات که تشریفات نه ولی اینکه اینطوری قریبانه عروسی کنیم و سوار ماشین شیم و بیایم یه جایی که جای خودمون نیست به خوب نمیه جورش دیگه نه؟ چه ماشین عروسه با حالی شد چابوش لطفا نگه این یه وقت بد نگی نه نمیگه حرف دارم برای هیچ وقت نحتت کنم حال هم جوریه قرص تو خوردی؟ چاوش نده نه قرص قرص غ تو سوئی ج دستن گفت برسی خودت پشیی <تصفح> چرا پسم می زدی؟ دلیل میدونی؟ دلش چاوش بود چرا اومدی پس؟ خواستم فرار نکنم دل واقعی هم. واقعی <تصفيق> امشب حالم خوبه دل برگشتن تو بگو که بهترم بشه شک داری و بله گفتی <تصفيق> ما چی داریم از بچگی اون داریم سن بچگی، بیشتر یادم میاد آلالا. بچگی. خوب تاکن بریزه اصلا دیگه دنبالش نیستم فقط داریم حرف میزه باشه بچه که بودیم تو خونمون یه چینه دیگار داشت سردر ورودی هنوز هم هست چاوش و سطر رو هنوی کار هر روزشون بود مسابقه بدن ببینن کی میتونه از چینه بچه کی همه‌شونم می‌تونستم سخت ترسنام سقوطش واقعا ترسنامی کن نمشه تا بالای چینه می‌رفتم پا می‌شدم با می‌سدم رد شدم پا هم شروع می کرد به لرزی جاوش زتا رو هنیف هم پایین بایین می‌سدم رد شدن هم می‌دن همین دو قدم میرفتم پاهم یه جوری میلرزی که از ترس نیفتادن دولا میشدم چینه رو سفت میچزم چابوش باباشون کوریخونی داشت همیشه هم دلخور و سرفگنده از این نتونستنم از ترسم از تینه شدن این مسیر لعنتی چینه نامید میزش میده که این چینه این رد نشده شده بود خوره ای روح بچه متنفه بودم ازش اماش گفتم یک خود چی میشون سنده یک کاش بابام چینم خراب میکن بزن جرش چیز دیگه میساخم زلزله بید. همهش کاش حلکی همهش کاش حلکی نه زلزله اومد نه بابامون چینه رو خراب کرد اون چینه هر روز سر جاش بود منم هر روز میرفتم اون پایین بایین میسادم نگاش میکردم به خوره روح هم نگاه میکردم به شب زد به سرم انقدر که این ترس به خجالت جده بود رفتم تو حیاط با نستادم صاف رفتم سمت دیوار دیوار رفتم بالا واسادم رو چینه نفس کشیدم نفس کشیدم عین بند بازا رفتم رفتم داشتم میرسیدم به آخرش من رسیدم باور میکنی رسیدم لیلا باورد میشه این قصد زرگ داشتم پرچه با پای. دستم شکست سرم شکست درد داشت ولی جون صدا کردن نداشت کمک میخواستم بایی نه جونشو داشتم نه روشو حالا که برنده شده بودم چرا بعد این اتفاق میافتاد؟ حالا که چینه رو رد کرده بودم چرا بعد این اتفاق میفتاد؟ اصلا چرا بیشاهد رفتم رو چینه؟ حالا کی باور میکنه من اون مسیر رو ته کردم؟ کی؟ وقت هیچ کس باور نکرد من اون مسیر رو طی کردم تو مسیری بودی که باید تهی می شدید و همه می فهمدم. این بار با شاید ولی اون روز اون مسیر بچگی من باور میکنم موقعتیم میرم سراغ چابش صدا هجرم خونه این که برام در نظر گرفته بود تو بودی این که گفتی و میدادی هم من میدادم هم چابش هم خون رودن لچ بازی بردار نیست تو حرفم ته میزبرادرگه نیست بگو سمت من نیاد. تو هم اگه سمت اونی نیاد. خی هم کرد جلو مردم جش زنم جلو کریم بوستان حالم که دست تو دست با این یارو فقط بهگو دور روور من نیاد بگو سمت نیاددارست. شنیدم؟ خال فقط رفته توجا ب نشسته. با زبون زنونه میدهش میگه هر ری من به کسی باج نمیدم برن شکایت کنن برن با بزرگترشون بیان با آراز بیان وقتی محتاب بمگه شوهر دروخ بو دنیا همدازی دکمه برام ارزش نداره وقتی محتاب بمپشت کنه وقتی محتاب گریه کنه بهشون به گال گاردم و باز کردم بگو همه شون بیان کریم بوستان، ستار، قانون اون شوهر تو که رفته بشه بوده بش... جلو مرافع رو بگیره مرافه تازه شروع شده اگه شروع نشده بود آراس هنوز داشتم بود هنوزم هست بدیگه نیست من اگه به شوهرتون مواد بدم دوباره معتادش کنم هنو آب میونی میمونی بدیگه میمونی بگو همشون با گارد بیان بگو هرچی دارن رو کنن هرچی دارن از همه خوردم از همه خوردم این صحبی که تو راهه صحب تکدیف روشن کردنه اولم از تو منیجه شروع میکنم بعدش خودم رو گردن کش کردنم جلو مهتاب و باباش بعد میرم سراغ توکل بعد میرم سراغ خاله عرفت بمیرم برات که اینقدر سر چلوبه حالا بسطن این شلوب پلوگی ها من چه کردم که میخوای تکلیفم روشن کنی فیران هیچ اما اگه رفتی سمتا دیگه دورو برای من نیا جمع شورک و جمع نگرانت شدم دیشب تو اله کجا بودی؟ منم نگرانت شدم که داری با کیا میبندی و آره که سلام آتفه خانه پفر ما تو بودم در برای داری بچه بودی اسکناس بهت دادم گفتم برو خوردش کن رفتی اسکناس سر رو ریز ریز کردی آوردی گذاشتی کپ دستم بچه بودی فکر کردی پول اونجوری باید خوب کرد الان هم برای من همونی داری پستی که پرونی به من میاد نه تو دهنتو مجوزی برای هست. دو روز دو روز حلیمه رو امانت گذاشتم پیشت اندازه چاوش امانت داری کردی کاری کردی که گذاشت رفت که رفت دیدیم به شما میاد تیک پرونی؟ آیفت تو میدون بستن شسته در با مرافر را نیفته تو بستش اینه کجا بودی دیشب دالا سینما بودم آها آه آه پس خواهم دادشت زن گرفته خواهی اصلی پختی براش؟ شوهرام بر هم کردی تصمیم خودم بود تصمیم تو من بودم این حلقه رو کردی تو دستم گفتی وفاداری هستم نه تو وقتی که جلوی چاوش بایستدی آراز و لیلاشا به عروسیشون مونده بودن تو کوچه سردشون بود. خواب میخواستن گرما میخواستن سخت میخواستن زنگ زدم بهشون گفتم برن کلبه من راهشون دادن الاجاله یه چاوش واسدن بایی بیرونشون کنم آره بیا آراز ولی من رو بیرون نکردم بهش کلیت دادم نگرفت نیمد و کجا رفته نمیدونم چرا آتاظ والای خونه کریمه اون تازه برگشت تو بلایت خودش قیبه داغداره تو خودشه جون هرکی دوست داری اون نکش فساد دروای خودتون عقل داری عقل میدونی چیه عقلم بهم به گفت رسول به کم وسط این محرکه تو چیت به تلعت رفته دختر تلعت اینه که حرف هر کسو ناکسو گرد کنی بذاری کف دست چوارت تدبیرت مهمون نوازیت شرخا بوندنت. چیت؟ به من نگو به خودت بگو آبا خون ریخته شده کم ولی ریخته شده بیشتر شد چی؟ به خاطر این گفتنم رسول بیاد این وسط که پایت گریبه باز نشه به این قائله دوزار از این کم کنه دوزار از اون بلکه شر بخوابه حالا خودت شر شدی؟ شب کجا بودی؟ با هنیف؟ با چاوش؟ چی میبسی؟ بگو چی میبسیم تا بهت بگم قلطه اگه سر آراز میبسیم قلط هم در قلطه گفت آراز دیگه نره سمتش گفت از هممون خورده صرفشی؟ طرفشم بسارات چی؟ هر بزنم یار گله داره اصلا بسطدگیری کار من نیست حسلهشو ندارم تو <تص> بگو حوصله چی رو داری؟ شغر داری وقتشه نوبتمه حقمه برم با مردم وقت بچه دار شدنه من هنوز دارم برادر بزرگ میکنم تو اصلا چرا نمیهی تهران؟ چرا دوری میکنی؟ من چی دیدی؟ مواد، گذشتت، خجالت من گرفتار دوای جدید و قدیم این دو تو خونه بادم تو چی گرفتار چی هستی اراده نداشتن اراده اونجا سر زمین تو چه کار میکنه آسمون است تو خورشید و خورشی گندم تصویری نیست نشونه این نیست که وسوسهم کنه آخرش که چی آخرش دیگه باید شهرنشینی باشه الان موقت پیشم تو این خونه ای الانو درياب قولیدم چوبان دادی رو دریا تو و چیل کریمی میمونه فهمیدی قدم از قدم رد نمیره جواب من بده تا چه نصیت روزو کرد؟ ها؟ خروزخون به شبارخون نمیرسید تا دوکل سطح مرافر راه نمیداخت الان خروزخون به شبارخون وصل نمیشه الا به عشق حسد پس ات زمه رفته ات زم بچه مرده بابا این داییتون، دوکل غلط کرد، اشتباه کرد شما نکنین، غلط نکنین خلاص نفهمه که به آار فناه دای. اجه نفر مدی بیا جلو بشیم. دفته پیش که اومده خوار زنم سرم بالا بود زنم کنار هستم. حالم کدونجون هست سرم بالا هست یا کنار دستم با سر خم دارم یاد که خورو خفیف شد ببخشید اشتباه کردم بیجا کردم دارشم اونطوری هم که من فکر میکنم تو جیان نیستم نز یکیشون خیانت دیدم از اون یکی لابوشونه خورم میکندش دارم میرم خورو و خفیبشم دا کردار. این که باید خواهش منم چرا تو خواهد نوش این داشت بزرگه منم کنجا من بپرم باید بگو میپرم نبینم اشکتو <تصور> نداریم گنار چوبش باش مردم خانم کل شهر و سور میدم به مرگهنی بی برگی طلاق نیم ایدون اون زن خوب خوشقلب نجیب چشم دل سیر قبول ولی خوش ندارم داشم با زنی عروسی کنه که بچه شب عروسیش عکس داشته باشه بشه دو هفته دیگه یه ما دیگه نه الان الان نمیگم داره دیر میشه یکم یک دیر شده سرابه آقا شم سرابه نیست چی شده کلیه بخواهد همین الان سرابه آمدیگیشه داره آقا مامانو میاره بیمارستان هم میگم مسافراتون میدونم بله سرابه مسافره خونه سرکم سرکم پسر سر. سر. مگه نمیگی الان میخواد؟ دختر مردومتو جود درویسی ننداز. درویسی چی؟ عروسشه. در چرا دخترش لیلا بهش نمیده؟ چون به شما ربطی نداره اباصام. افتری، خیلی افتری. از شوخی که نیست که اگر اون نباشه نه نمیراو اساس. از که میخوای بگیری؟ حرف خونده <تصفح> کی؟ صداتو میپای. حالا دلش بخواد میاد. گوش کن. من راجلم. من نوکرتم آقا جون. ولی سر جون مادرم، دوما رضایت شما نیستم. صد تا من میخوام دوباره بچه دارشم بفهم سنتا رو من دادایی که و من خواهر میخوام خب بابا لیلا سریخ خواه تو مامان مامون اصلا حالش خوب نیست دکتر گفته همین الان به پیوندیتی هاش داره بجام لیلا الو لیلا چی شده میرم برای آزمایش ما اون حطفت باید پیونش دارم بابا تو رو قبول نمیکن درم میمیره بردنش بیمارستان دستگام اگه چقدر نگش میداره باید قبول کنه تایی نظر من رو بدونیم نه وقتی پای جونم مامانم در میینه از کجا اینقدر مطمئن نمیخوام اگه هم نکنیم پارو نمیخوای بگی چرا خب من برای همین نمیپرس مورس چند شمبر هست چهارشنبه چهارشنبه چهارشنبه. اصاب خالی که گذاشتم رو بارموزه اول هفته اتفاقان امروز مواهده برگشتشه چاوش میزنه به حسابم از تره دل رازیم از تره دل رازیم از سهر. سهر. بابا هم من هستم هماره هستم که چی کار کنی؟ پولش جور کرده خدا زیادش کنه پس حله اون وقت داداشت رو تو عبزید بشینن بگن فردای عردشون چلپنجام ایلو خالمه کسی نمیگه بعدم اصلا بگن من خودم میتونم کلیه اما عاشق از چیش واسه مشروبش مایه میذاره از پول دومادش یا از کلیه دفترش نه. نه از قرورش از قرور خودش یعنی چی از قرور خودش با بوستان نکنه میخوای بری به من نگو کجا برم کجا نرم اونی که روان تخت راید علفته علفت زن من عشق من عشق پیری یا سرش نمیشه بلکه اگه پیرتر شدی عاشقتر میشه ایشتن ماتا چشکی به کجا برم کجا نرم به من نگو قرورم هر آجه چی کنم یا نکنم میخوام هفتاد سلسیان نواشه اون غروری که عربت نباشه جانِ اشتا میرا مسافر اون کہ دیگه چاوش چاوش سلام سلام Jaa, on, on. midagi. شما نباید اینجا باشیم آها تو ملک خودم نباید باشم حالش خوب نیست شما مثل اینکه خوب نیست شما بری بهتر میشه نه ایده نشناخته ازم بدت میاد زنده این زنده ای سابق شما بهتر اینجا نباشیم گفتم بهتره اینجا نباشی برو بیرون خانوم میبینم مطربم که هستی الفت میخواد دعوارو به خابونه شما بیایی ستار میاد ستار بیاد اون یکی پانیش ستار غلط کرده گفتم برو بیرون خانوم من زنم بردله اتفاقا به ایشون رو پیغام فرستدی منزل نبودن که جواب بدن چه پیغامی؟ فعلا اگه مردا بیان اینجا دعوا به میشه. آها، بعد زنا بیان. تو میی وسط این همه مرد، وسط این اگه همه ما این مرد رو برادر ببینیم، نظرتون چی؟ ایونا شما ور بسش میخواهی خهری نبینن چی؟ بزن به چاک خانم، بزن به چاک. بد حرف میزنی با یه خانم. شما اسلام کن. من نمیتونم. آخه شما گفتید که خانومتون بد دله. بفرمایید بیرون خانم، بفرمایید بیرون اینجا وای نصیب. بیرون. کسی از سلام و علیکم ما؟ شما ما یه چند نفری میگیم ما؟ ما که تو زندگی خاک شدی همون خواب تو سرتو که این شدی بدری آبجیم تو خوابم نمیدیدن یه روز بچه هاشون اینجوری تو روی بزرگتر وایستن آره آقام و مادرم تو خوابم نمیدیدن که یه روز دادی توکل آدم بردار بیاره باست من شوهر آبجیم آدم بیاره بذاره جلو رو من گزمه الفت خانون بشه پسرشون تو ملک پدری را نده در این دایی من شابوش نیستم آمن سی ماه آخرم شابوش دادشش رد نمی کرد بله آخر رد کرده مم. حالی چی میگم دایی حالی تو بزرگترم هست آره نمه نمه دوره حالی این میشه حالی میخوانو شما برو مریض خونه حال رو روبرانیست آقای تبک کن شما به فرمایی مریض خونه حال عبجیتون خوب بست. من اینجا امانت داره الفتم آره امانت داره مال خیل من که قاسب مال خیل خدافزیتون هستیزم بفرما خدافزیمون نخواهی شنید موچه شبل کن دنباله دعوانه گذیده دعوان تمومه همه ایسالا حق با تو بوده انگ بستم بهت خواستم مرد خوری کنم ازم بگذر پول بخوام زمانت حرفام دو تو غلط کردم پشتش بگم خوبه؟ یعنی چی کردی؟ دهن کلوم فقط منو جا باش پنجام میخوام برای علفت؟ من مردم کریم باید من, من مردم میزه میره باستا همیشه نه ادعای نه آتو پوتی نه حرف و صحبه از این حرف رو شنیدم از من که نش میدیم ولی از ستار که شنیدم من چک دادم بهش من ستار نیستم من کریم بوستانم به سر خان میره من دروغ بودم من زیر رو هم من مرد بود. من بودم من گردن شکستم من گردن شکستم شنیدی شنیدی دیگه برگشت نداره دیگه برگشت نداره ادام داره زنمو نجاز بده حالا نه کلیه دختر میخوام نه پول دومات میخوام نه فداکاری عروس میخوام سرمایه هنی بود هنی بود که کپ این میلون پرشش کردن آورون آورون پنجا ملیونه میارزه که te korral on ettevaat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 Aga alo linana miks ešt? Ka han programm. Ka دنیای کنار یار خوشا ای یار ای یار ای یار به خاطر آقا به خاطر کریم گستا به خاطر خودم باتای از آراز میگذری از منم که نه من بچه رو سر صفری که نونش حلال نیست به دنیا نمیارم حاضر شما قبول کنه سوری جدا شیم خوش میمکنه حالی من همون دوستی خوال خیرس هم تو زندگیت موازم پله ها هستی زنده داشت از خیامون کرد میشه چی فقط درست بسپورتست من کل بدم همه چیم از جردون هستن ب تنها... چون اوتش در زیر خاکستاں برگرد و بیا A closes am 경찰, haas liksom, nagus시